فصل نهوم سم شکافته باکسر مدتها تحت معالجه بود ساختمان مجدد آسیاب بادی از فردای روزی که جشن پیروزی تمام شد شروع شده بود باکسر حاضر نشد حتی یک روز کار را تعطیل کند و نمیگذاشت کسی متوجه درد و رنجش شود ولی شبها به طور خصوصی به کلوبر اعتراف میکرد که سمش او را زیاد نراحت می کند. کلوور از علف های مختلف زماد درست میکرد و رویسمرو میگذاشت. او و بنجامین دو نفری به باکسر اصرار می کردند که کمتر کار کند می میگفت ریه است که برای ابد سلامت نمی ماند. ولی باکسر گوشش به این حرفها بدهکار نبود و تنها آرزویش این بود که قبل از بازنشسته شدن آسیا به بازی را ساخت و پرداخته ببیند. در ابتدا وقتی قوانین قلعه حیوانات تدوین شد سن بازنشستگی اسفان و خوکان دوازده گاوها چهارده سگها نه گوسفندان هفت مرقها و غازها پنج سالگی تعیین شد جیرهٔ کافی هم برای بازنشستگان در نظر گرفته شد در این فاصله هیچ حیوانی بازنشسته نشده بود ولی اخیرا روی آن مسئله زیاد بحث میشد حالا که ی پشت باقی میوه به کشت جو اختصاص یافته بود میگفتند که گوشه ی از چراگاه بزرگ و منظور چرای حیوانات بازنشسته مجزا محصور خواهد شد و میگفتند که جیره ی هر اسب روزی دو کیلو جو و در زمستان شش کیلو یونجه با یک خویج در صورت امکان یک سیب در تعطیلات عمومی خواهد بود دوازدهمین سال تولد باکسر مصادف با اواخر تابستان سال آینده بود در خلال این مدت زندگی سخت بود زمستان به سردی سال گذشته و آزوغه حتی از آن سال هم کمتر بود جیره حیوانات به سسنای جیره خوکا و سکا تقلیل پیدا کرد و سکویلر توضیح داد که تصاوی مطلق در امر جیرمندی خلاف اصول حیوانگری است حال با آنکه ظواهر زواهر از کمبود آزوغه می کرد برای سکویلر مشکل نبود که به حیوانات ثابت کند در واقع کمبودی نیست و مقتضیات ایجاب کرده است که در میزان جیر تعدیلی به آید سکویلر همیشه کلمه ی تعدیل را به کار می نه تقلیل اما با مقایسه با زمان جونز همه چیز ترقی کرده بود سکویلر به سرعت اعدادی پشت سرهم میخوان تا به حیوانات نشان دهد حتی از زمان جونز زوی بیشتر یونجه فراوان و شلغم زیادتری دارند ساعات کمتری کار میکنند و آب آشامیدنیشان گباراتر عمرشان طولانیتر بهتاش نوزادان بهتر شده است در طبیل کاه بیشتر دارند و مگس کمتر آزار میدهد حیوانات تمام این مطالب را باور می کردند، در واقع خاطری دوره جونز تقریباً محو شده بود. می که زندگی امروزشان سخت و خالی است. غالباً گرسنند، سردشان است و معمولاً جز هنگام خواب کار می کنند. ولی بیشک روزهای قدیم از امروز هم بدتر بوده است. از این درز فکر خوشنود بودند علاوه آن روزها برده بودند و امروز آزادند و خود این مسئله بزرگترین برتری زندگی امروز نسبت به گذشته بود و ای بود که سکویلر هیچگاه از اشاره بهدان قفلت نمیکرد در این روزها دهنهای بیشتری برای خوردن باز بود در پاییز چهار ماد خوک تقریبا همه در یک وقت و مجموعا سی و یک طوله آوردند که تقریبا همه پیسه بودند و چون ناپل اون تناخوک نر مذهب بود اصل و نصب آنها را می شد زد اعلام کردند که پس از خرید آجر و تیر، مدرسه‌ای در باغ ساخته خواهد شد اجالتا بچ خوک در آشپزخانه و توسط شخص ناپل آن تعلیم می گرفتند. در باغ ورزش می کردند و از بازی با طول سایر حیوانات منع شده بودند در همین ایام عادت بر این جاری شده بود که هر حیوان این سر راه خوکی قرار می‌گرفت کنار می تا خوک بگذرد به علاوه مرسوم شده بود که خوک ها در هر درجه به عنوان امتیاز روزهای یکشنبه روبان سبزی به دمشان ببندند مزرعه سال نسبتاً پر موفقیتی را گذرانده بود اما هنوز کم پولی بود آجور و ماسه و گچ برای مدرسه باید خریداری میشد، علاوه لازم بود برای خرید آلات آسیاب بادی باز پول پتندال شود، بعض نفت و شمع ساختمان، شکر و چیزهای دیگر از قبیل میخ و نخ و زغال و سیم و خرد آهن و بیسکویت سگ هم باید تهیه میشد. تاپلون سایر خوکها را از خود قند من کرده بود چون می گفت موجب است یونجه و قسمتی از محصول سیب زمینی فروخته شد و قرارداد فروش تخم مرغ به 600 تخم مرغ در هفته افزایش یافطاری که در آن سال به اندازه کافی جوجه تولید نشد و تعداد مرغها ثابت ماند جیزهها که در ماه دسامبر تقلیل پیدا کرده بود در فوریه هم کم شد روشن کردن چراغ به منظور صرف در نفت قدغن شد اما خوکها به نظر مرفه می میآدند در واقع همه در حال فروشدن بودند، یکی از بعد از ارخای اواخر ماه مافققیه راحه مطبوع اشتها آوری به مشام حیوانات خورد که نمیدانستند چیست. باد بور را از سمت آب که پشت آشپزخانه واقع بود و در دوران جوز متروک مانده بود میآورد. یکی گفت این بوی جوی جوشنده است و حیوانات با ولع هوا را بالا کشیدند. و فکر کردند شاید برای شام حریر گرم دارند اما از شام گرم خبری نشد یک شنبه بعد اعلام شد که از این تاریخ محصول جو مختص خوکاست در مزرعه پشت باقی میده هم جو کشت شده بود خیلی زود این خبر هم نشر کرد که هر خوکی روزانه نیم لیتر جیره آبجو دارد و چهار لیتر هم مختص شخص آن است که در غده چینی به حضورش میپرند مشقاتی که حیوانات تحمل میکردند با جلال بیشتر زندگی امروزشان تعدیل میشد این روزها سرود و آواز و نطق و خطبه و تظاهرات و رژه بیشتر بود آن امر کرده بود حیوانات هفته یک بار تظاهرات داوطلبانه بکنند برای اینکه پیروزی و فتوحات را جشن می‌گirdند. حیوانات سر وقت معین کار را تعطیل کردند و دور محوته سربازوار به راه می‌افتادند. خوک‌ها در جلو و بعد به ترتیب از پاگا گا، پاگوس‌رنده‌ها و پرندگان حرکت می‌کردند. سگ‌ها در دو طرف صف بودند و پیشاپیش همه جوجه خروس ناپلئون بود. باکسر و کلوور پرتم سبزی را که رویش نقش سم و شاخ و شعار زندباد رفیق ناپل اون رسم بود حمل میکردند. بعد اشعاری که در متن ناپل سروده شده بود قرائت می شد و بعد سکویلر راجع به آخرین پیشرفتها و ازدیاد محصول سخنرانی میکرد و به حس موقعیت گلوله هم شلیک می شد. بوزوندان به تظاهرات داوطلبانه علاقه زیادی داشتند و اگر معدودی از حیوانات وقتی که خوکها و سگها در حول خوش نبودن لب شکایت می گوشدن که این کار موجب اطلاف وقت و مستلزم ایستادن در هوای سرد است بوزوندان مطمئناً انها را با پر صدای چهار پا خوب دفا بعد ساکت می به طور کلی حیوانات از این قبیل جشنها لذت میبردند چون یاداور این بود که ارباب خودشان هستند و کاری که میکنند فقط برای خودشان است و این مسئله موجب تسلای خاطر بود به با آوازها و تظاهرات و آمار سکویلر و شلیک گلوله و قولی قوقوی جوجه خروس و احتزاز پرچم اقلا برای مدت کوتاهی فراموش میکردند خالی است در ماه آوریل در قلعه حیوانات اعلام جمهوریت شد و لازم شد رئیس جمهور انتخاب شود جز اون نام نامزدی برای این کار نبود و او به اتفاق آرا انتخاب کردی در همان روز انتخابات شایع شد که اسناد جدیدی درباره های سنوبال با جونز به دست آمده است و تازه معلوم شده که سنوبال فقط قصد نداشته است که جنگ گاودانی را با شکست مواجه سازد بلکه سنوبال در طرف جونز میجنگیده است در حقیقت او به عنوان سرکرده ی آدمها آدم باشار زنده باد بشریت وارد جنگ گافدانی شد و زخمی که هنوز معدودی به خاطر داشتند و پشتش وارد آمد جایی دندانهای نافل بوده است در عواصل تابستان مزز زاغ اهلی از چندین سال باز به قلعه حیوانات باز آمد هیچ تغییری نکرده بود باز کار نمیکرد و هنوز با همان آهنگ از سرزمین شیر و اصل صحبت میکرد. بر تنه درختی می نشست، بالهای سیاهش را به هم می زد و با هر کس که میدان می داد، فرد می زد قامنگار بزرگش به آسمان اشاره می کرد و با تمتراغ می گفت رفقه، آن بالا، آن بالا درست بشت، آن عبر سیاه زمینی جی و ازل اما اما زمینی که ما ایوانات آن برای همیشه از زنج کار آسوده می شویم حتی مدعی بود که در یکی از پروازهای آنجا را دیده است. مزارع جاودانی شبدر و پرچینهایی که روی آنها قند و کلوچه میروید دیده است خیلی از حیوانات های او را باور میکردند و منطقشان این بود که زندگی اکنون پرمشقت است انصاف در این است که دنیای بهتری و در جای دیگر وجود داشته باشد مطلبی که درکش مشکل بود رویه خوکها در مقابل معزز بود قطعه‌های او را درباره سرزمین شیرو اثر با طرز آمیزی تکییب میکردند. مزارق به او اجازه داده بودند بی آن‌که کاری انجام دهد در مزرعه بماند و حتی روزانه یک تکه آبجو آب برایش منظور کرده بودند. باکسر پس از آنکه سمش خوب شد از پیش هم بیشتر کار میکند آن سال در واقع همه حیوانات برد بارانه کار کردن غیر از کار مزرعه و تجدید بنای ساختمان آسیاب بادی کار ساختمان مدرسه بچه خوکا هم از اول ماه مارس شروع شده بود گاهی ساعات طولانی کار با غذای غیر مکفی، غیر قابل تحمل بود اما در کار باکسر هرگز غصوری است نمیداد. آنچه میگفت یا میکرد هیچ نشانه ای از تحلیل قوایش نبود فقط دیافراگم کمی شکسته شده بود پوستش درخشندگی سابقان نداشت و کپلهایش چین و چروک برداشته بود دیگران میگفتند با سبزه های بهاری حالش خوب خواهد شد اما بهار رسید و باکسر چاق نشد گاهی در سربالایی تمام نیروی خود را جمع می کرد که وزنی را بکشد ولی بنظر نظر می آمد قدرتی که او را سراپا داشته است از مو اراده ثابت اوست در این مواقع لبش شکل من بیشتر کار خواهم کرد را می ساخت صدایش دیگر در نمی آمد کلوور و بنجامین باز و او تذکر دادند که مواباز به سلامت خود باشد و باز باکسر توجهی نکرد دوازدهمین سال تولدش نزدیک میشد هیچ چیز برایش مهم نبود جز اینکه قبل از بازنشستگی برای ساختن آسیاب بادی به اندازه کافی سنگ جمع شود شبید وقت در تابستان ناگهان خبر رسید که برای باکسر اتفاقی افتاده است باکسر شبانه و به تنهایی برای کشیدن یک بار سنگین به آسیاب رفته بود خبر صحت داشت و کبوتر با عجله خبر آوردند که باکسر بر پهلو افتاده و قادر به بلند شدن نیست در حدود نیمی از هیوانات به سمت تپه آسیاب هجوم بردند باکسر، روی زمین افتاده بود، گردنش بین دو مال بند عرابط خوری به سمت خارج کشیده شده بود که حتی قادر به بلند کردن سرش نبود، چشمانش بی‌فروغ و پهلوهایش از رخیس بود. اشد یه باری که خون از دهانش جاری بود. کلاور در کنارش زانو زد و پرسید: "باکسر، چطوری؟" باکسر با صدای ضعیفش گفت: ریه هم ناراحت است." ولی مهم نیست. تیکت می‌کنم کار آسیاب بادی بدونم من هم تمام شده. سنگ و نازه کافی جمع شده است به هر حال من فقط یک ماه دیگر کار میکردم اگر راستش را بخواهی مدتها بود در فکر بازنشستگی بودم فکر میکردم چون بنجامین هم پیر شده او را هم با من بازنشسته میکنند و مصاحب من میشود گلوگر گفت باید فوراً به دادش رسید یکی به تاخت و سکولیر را خبر کند برای دادن خبر به سکویلر همه دوان دوان رفتند فقط کلوبر ماند و بنجامین که کنار باکسر نشست بیان که کلمهی بگوید بادوم بلندش مگز از را از دورو بر او دور کرد پس از رب ساعتی سکویلر با ظاهری نگران و پر هم دردی رسید و گفت رفیق ناپل آن از حادثه ناگواری که برای یکی از وفادارترین ترین خدمتگزاران غلعه پیش آمده با تأثر فراوان مطلع شد و دارد ترتیبی می که او را برای معالجه به مریض بلیندن ببرند این خبر حیوانات را کمی مشبه ساخت جز مالی و سنوبال هیچ حیوانی قلعه را تک نکرده بود و حیوانات نمی‌خواستند که رفیق بیمارشان به دست بشر بیافتند ولی سکویلر گفت که دام بلیندن بهتر می باکسر را معالجه کنند و حیوانات را قانع ساخت نیم ساعت بعد باکسر حالش تا حدی جا آمد و لنگان لنگان به سوی طبیلش جایی کلوور و بنجامین برایش از کاخ خوابگاه خوبی مرتب کرده بودند بهراه افتاد باکسر دو روز دیگر در طبیل ماند خوکها یک بطری بزرگ محتوی داروی قرمززنگی که در جعبه داروخانه حمام یافته بودند برایش فرستادند کلوور روزی دو بار بعد از غذا آن را به باکسر میخوراند و شبها ازش می‌ماند، و با او حرف میزد و بنجامین هممگزها را از دوروبرش دور, دور میکرد باکسر به آنها اعتراف کرد که از آنچه پیش آمده متأثر نیست چون اگر خوب میشد میتواند می تواند امیدوار باشد سه سال دیگر اوم می کند و از همین حالا به ایام پرآرامشی که در کنج چراگاه بزرگ آهد گذاراند فکر می کند. این اولین باری بود که باکسر فراغت فکر کردن پیدا می کرد و می مصمم است که بقیه دوران حیاتش را صرف فرا گرفتن بقیه 22 حروف کند بنجامین مکلوور فقط ساعت پس از کار میتوانستن پیش باکسر بمانند و عواصم روز بود که بارکش برای بردن او آمد. در آن ساعت همه حیوانات تحت نظارت خوکی مشغول جین علف از میان شلغم ها بودند. همه از دیدن بنجامین که ار ار کنان چهار 14 از سنت قلعه میآمد، غرق در حیرت شدند. این اولین باری بود که بنجامین به هیجان آمده بود و به طور غیظ اولین دفعه بود که کسی او را در حال 4 دیدن می‌دید. داد زد کنید عجله کنید دارند باکسر را میبرند حیوانات بیان که منتظر اجازه خوب شوند کار را رها کردند و با سرعت به سمت ساختمان دویدند آنجا در حیات طویله بارکش بزرگ دو اسبهی که اطرافش چیزهایی نوشته بودند ایستاده بود و مردی با قیافه شیطانی که کلاه منون کوداهی بر سر داشت، جای راننده نشسته بود و جای باکسر در طویله خالی بود حیوانات دور بارکش حلقه زدن و دست جمعی گفتن خداحافظ خداحافظ باکسر به جمعین در حالی که سن بر زمین میکوفت و جفتک میانداخت فریاد کشید احمقا احمقا نمیبینی اطراف بارکش چه نوشته شده؟ این حیجان حیوانات را به تعمل واداشت سکوت خب فرما شد موریل شروع کرد به هیجی کردن کلمات اما بنجامین او را پس را به چنین خواند. آلفرد سیمونز، گافکش و سیشم، ساز شهر بلینگدن فروشنده پوچت و کود و استخوان حیوان تهیه کننده لانه سک با غذا مگر نمیفهمید فهمید یعنی چه؟ دارن باکسر را به مسلخ میبرند فریادی از وحشت از حلقوم کلیه ای حیوانات بلند شد در همین موقع مردی که در جایگاه راننده نشسته بود شلاقی به اصب زد و بارکش سرعت گرفت کلوبر سعی کرد چهار نل بدود ولی عقب ماند و فریاد کشید باکسر،, باکسر باکسر باکسر و درست در همین موقع باکسر که گویی غوغای خارج را شنیده است صورتش را با خط باریک سفید رنگ پایین پوزش از پشت پنجره یک کچک بارکش نشان داد کلوور با صدای وحشتناکی زجه کشید باکسر بیا بیرون زود بیا بیرون میخواهند را بکشند همه حیوانات تکرار کردند: بیا بیرون باکسر بیا بیرون اما بارکش سرعت گرفته بود و داشت دور میشد و مسلم نبود که باکسر گفته کلوور را فهمیده باشد اما لحظه‌ای بعد صورت باکسر از پشت پنجره شد. و صدای کوبیدن او از داخل بارکش به گوش رسید تلاش می کرد با لگت راهی برای خروج پیدا کند در گذشته چند لگت باکسر بارکش را چون قوطی که بید خورد می کرد اما افسوس که دیگر قوایش تحلیل رفته بود پس از چند لحظه صدای کوبیدن سم خفیف و به لخره خاموش شد حیوانات در کمال نومیدی به اسبهای بارکش التماس کنان گفتند رفقا رفقا برادر خود را به پای مرگ نبرید اما آنها نادانتر از آن بودند که حقیقت قضیه را درک کنند فقط گوشهایشان را عقب خواباندند و تندتر رفتند چهرهٔ باکسر دیگر پشت پنجره ظاهر نشد دیر به فکر افتادند که دروازه پنج کلونی را ببندند بارکش از میان دروازه گذشت و به سرعت در جاده ناپدید شد باکسر را دیگر هرگز ندیدند سه روز بعد اعلام شد با اینکه چه امکان داشت برای محالجه باکسر کوشش شد باکسر در ملیز گویندن مرد خبر را سکویلر اعلام کرد و گفت شخصا در آخرین ساعت حیات باکسر بر بالینش حضور داشته است سکویلر یک پا را بلند کرد و عشق چشمانش را خوش کرد و گفت تأثیرنگی سرین ای بود که در عمرن دیدند من تا دم واپسین کنارش بودم باکسر در آخرین لحظات زندگی با صدای ضعیفی که مشکل شنیده میشد در گوشم گفت که تنها قمش این است که از اتمام آسیاب بادیجان میاد. و سکولر اضافه کرد آخرین جملاتش رفقا به پیش به نام انقلاب به پیش زنده فلسفه حیوانات زنده باد رفیق ناپلئون و حق همیشه با ناپلئون است. در اینجا یک مرتبه رفتار سکویلر تغییری کرد پس از درنگ مختصری و قبل از آنکه به گفتارش ادامه دهد چشمان ریزش را با نگاه مشکوک با سرعت به اطراف چرخاند و گفت به او گزارش شده که موقع عظیمت باکسر شایعه احمقانه و ای در میان بوده بعضی از, از حیوانات دیدند که بارکش مال سیمونز و گاوکش بوده و نتیجه گرفتند که باکسر پیش سلاخ فرستاده شده است کردنی نیست که حیوانی تا این پای بیشور باشد. دمش را جنباند و از سمتی به سمتی جهید و با خشم و غضب فریاد کشید. رفقا، شما باید رهبر خود را تا حال شناخته باشید. توضیح مطلب بسیار ساده است. ویتاری بارکشی را که قبلا متعلق به سلاخی بوده، خریده و هنوز نوشته های روی آن را پاک نکرده است و همین امر سبب تفهم شده است. خیال حیوانات از شنیدن این خبر یافت. وقتی سکوئیلر جزئیات وضع باکسر را ترسیم کرد و از توجهاتی که به او شده بود و داروهای گران قیمتی که ناپل آن بدون کوچکترین درنگ از کیسه پروفوتوود خود خریده بود صحبت کرد، باقیمانده‌ی تردید حیوانات نیز زایل شد. که از مرگ رفیق بدر لاشتن با این فکر که عقلن هنگام مرگ خوشحال بوده تعدیل ناپل اون در جلسه روز یکشنبه بعد شخصان حضور یافت و خطابه کوتاهی به افتخار باکسر ایراد کرد و گفت برگرداندن جنازه او امکان نداشت ولی دستور داده است حلقه بزرگ گلی از درخت های باغ تهیه کنند و بر مزار باکسر بگذارند گفت که پس از چند روز خوک ها قصد دارند ضیافتی به یاد بود و افتخار باکسر برپا سازند اون نطقش را با یادآوری دو شعار مورد علاقه باکسر من بیشتر خواهم کرد و همیشه حق با ناپل اون است و گفت بجاست که هر حیوانی این دو شعار را آویزه گوش کنند. روز زیافت ماشین باری بقالی ویلینگند به مزرعه آمد و جعبه چوبی بزرگی تحویل داد آن شب از ساختمان صدای آواز بلند بود و بعد سر و صدای جرنگ جرنگی شکستن شیشه و لیوان آمد تا ظهر فردای آن شب در قلعه جنب جوشی نبود خبر درس کرده بود که خوکا از محل نامعلومی برای خرید یک صندوق دیگر ویسکی پور به دست آودند.